دینا فترینال <سؤال> برخان به اترامه و برخان به نبع برای حجیت خبر واحد تعبودن این روز نسونام با طور تفصیل عبارت محوم استاد رو خوندیم و یه توضیح خارجی را جد به قصه محوم بر برمون استاد خلافاً به مشهور برای شر شرک و وست یک نحوه مفهومی خواهند و اون محوم را نیست نیستیده بود رسد ما دیروز عرض کنیم به نظر ما چه تحلیل لعبی و بعد اونزیه بنای تحلیل قانونی این از که بخواهیم اثبات محلوم بکنیم حالا قیلیت من حسده راهش اینه که اثبات بکنیم قضیه به نحوه سنایی یا سلاسی این راه اولش نظر ما و با در نظر یه خود وعده و لعب یعنی این طور نیست که بخواییم تمثل بکنیم به فرصه مقدمات حکمت ولو چه مقدمات حکمت بیر بچی هست اما حالا فکر این بچی هی که ظاهر بزرد و اون ادعا اینه که بعد در الفاظ در لغت عرب اینجور هست شدن که دو قسمت رو اصباقی میکنن دو مجلور مثلا اگر گفت در لغت فارسی حالا اگر گفت که عبره قرآن من صورت یوسف از صورت پت مثلا. این مند در وقت عرض شده برای ابتدا اون وقت شده که اقتدا خودش دو محنا داره یعنی اول قرآت سوی یوسف باشه یعنی این حالا در منحنوکی وجود داره و جوبره راعس سریی یوسف تعلق گیرسه و به قد سریی یوسف تعلق نگیرسه کو بگه سر معلوم می ده مثلا الا سوره الفع در این در لغت عرب دو معنا داره این شده انتهای است دو معنی داره یعنی یک نهایت قرائت شما که خود سوی فد داخل هست و وسیله ی نیست سوره اون چیزی به اینجا خوب خوب می که اونجور به آمده تا سوره فرد و محکوم شم مدید هم داره بعد از سوره فرد این حکم نیست ببینیم همون حکمی که در کلام آمد در حقیقت این حکم قبل از سوره یوسف نیست سوره یوسف هست ببینیم تا سوره فرد سوره فرق هم پرس خودش رو قبلش علوم بحث دیگه است بعد از سوره فرق این بکن رو نداره این بحث مفهومه مفهوم حقیقت بحث مفهوم اینه که لحظه من به اعلام در لغت حرابی وعد شدن برای اقتضا و انتها و اقتضا یک مفهوم نسبی مفهوم اضافی است اقتضا یعنی جایی که قبلش نیست لحاظ میکنه اصلا ابتدا وقتی یه یہسر تومن الکوفه یعنی این سیر من قبل از کوفه نبوده در, یعنی در اقتدا لحاظ میشه لحاظ شده معنی ابتدای اضافی معنی اضافی این نیست که بگه سیر من�ک بسته بوده تو یک اعدر هم خابیده. یعنی این سیر من قبل از کوفه نبوده سفر من قبل از کوفه نبوده این که میگه اقرد من صورت یوسف یعنی صوره یوسف این هوه که بوجود و قراحت گرفته قبل از صورت یوسف نبوده قفیت مقبوم و لظام نقطهی که برای شما الان قابل هم میاسه اینه که این من دلاله در چی میکنه دو تا مدلول داره یه مدلول احدانی هم داره یعنی لحاظ شده در افرسو. که ابتدا، یعنی یک چیزی که مسبوخ به عدم اونی صفته نباشه اگر این میشه اقتدار اگر لحاظ کرده باشه آدم رو با لحاظ ادم اسمش اقتداره لحاظ نکرده باشه نه اسمش رو نیست مثلا که قرعت و صورت یوسف اگر قرعت و صورت یوسف لحاظ نکرده که قبلش بوده یا نبوده اما اگه قرعت و من صورت یوسف من اگر گفت من صورتی این صورت یعنی لحاظ کرده در من قبل از این نبوده پس نکته پنی در باب مفهوم، از کردم در باب مخموم ما پنج وجه ده کرده در کتاب و اصول وردش آمده یک وجهش لغته الان ما رو یه لغت درست میکنیم ببینید ما در لغت عربی مثلا جمله این داریم این هم یعنی این دلالتش اینطوریه مثلا علاوه حالا اون تحلیل جمله شرطی رو من چون سابره اثر و حالا باز اون بحث طولانی جمله شرطی اینجور تحلیل میشه میان جزا رو نگاه میکنه انظار که زیدو فرهم یا مثلا اگر مهمان آمد نان بخر میان جزا رو که نان بخره نگاه میکنه میگن یک حکم داریم که وجوده، یک متعلق داریم که خریدن و متعلق و متعلق که چه سپس میکنیم وجوبه خریدن نان بعد سر اینه که این وجود رست روی این وجوبه خریدن که رست روی نان این وجوبه خریدن رست روی نان آیا مستقیم روی نان رسته؟ یا نه بین این دوتا یک فاصله هست اون فاصله اگر مهمان آمد کار اگر مهمان آمد اینه پس موضوع شما نامه و وجوب خریدن نام تحیلیشی استقرد میکنید این وجوب خریدن رسته روی نام اما مستقیم نرسته یا حالا اسمش روی مستقیم که مگه داده مخفوم من تو من اصلا صبرم وقتی ازش شد لازم مستری مرایه مستری لازم عربی و, و سانری لازم نیست من تو رو مخفوم بگذاری که زدی گم میشه بازش ولی ما اگه ما از کاری نگی یاد آورد باشه این که میگن مفهوم یا مخفوم موافقتی یا مخفوم مخالفت این درست نیست وی بعد از حقاری بهش از درست باشه ولی این تقریبی که ما میگیم درست نیست چون مخفوم موافقت مال لازم نیست مخفوم موافقت مال لازم نیست. مال لوازم معناست لوازم معنا در این تفسیر ما نمیاد خوب دقت بکنید این که میگه به پدر ال عث نگو لازمه این معنایی هست که کوتاهش نزن این لازمه ای معناست این وقتی به عالم مفهوم نداره به این نقطه‌ای که ما گفتیم نداره اون معنا معنا رو در نظر میگیره لذا حکم موافقه و مخالف اینکه مفهوم مخالف هم مثل معنای رو حساب بکنه و الا اگر بحث بحث لغوی باشه که ظاهر اصلی عبارت همین طوره، اگر بحث بحث لغوی باشه دقت میکنید ما مفهوم موافقه ندازیم مفهوم مخالفه من چند از بار تاکید که مفهوم موافقت اصطلاح واژ خارج بشه سر داشتن همینه سر نکته فنی اینه چون اونجا یک نکته نیست که از لح الان شما این مفهوم من و الا ابتدا و انتحار رو چونی رو براتون تفصیل کردید یا مفهوم شن اون وقت در اینجا تصور این خوده بسید بکرد وجوب خریدن خورده به نان و که مطلق نه بین این دوتا یک شکاف ایجاد کرده بین این دوتا بین نان و وجوب خریدن یک شکاف ایجاد کرده اون شکاف اینه اگر مهمان آمد خب یه بحث که آیان داره آیا اینجا ترتب هست؟ ظاهر عبارت ترتبه ان که این ترتبه می دست. آیا این ترتبه به نحوه لزوم هست؟ بازم ظاهر عبارت به نحوه لزوم که این برون مترتب می میشه و لازم هم هست. آیا به نحوه اولیت هست؟ آیا کوی اینجا اشکال دارن که نحوه اولیت ثابت نیشه ما منغویت در لغت عربی فارسی میگیم اگر نبزش 13 کبد داره بگویید اگر فقر داره نغزش 13 بگویید علت رو بعد از اگر میاریم بگوییم معلومه میبینیم این اشکال ما یه جواب دادیم کرارا توضیح دادیم که این مطلب آکویی در امور واقعی درسته اما در امور اعتباری جور نیست چون امور اعتباری واقعیت نداره با همین صحبت و با همین جل اینا واقعیت شده واقعیتشون با همین صحبته همین که گفت اگر مهمان آمد نان بخرد این خودش کافیه بله اون مثال اگر نزدش شونده تکرارش عمل واقعی هست. اون امر واقعی رو مثال نذارید اون مثلا اگر آهنداه زیرش آتش هست. اگر زیرش آتش هست. خب دیگه علتی که معلوله درست می مطلب توی جمله خبری ممکن است و عدات شرط علت باشه ممکن معلول باشه ممکن معلول علت سالسه باشه ممکن همه اینا هم ممکنه اما توی اعتباریات اینطور نیست توی اعتباریات هر و عدات اداه سال علت میشه هم به اگر نان اگر مهمان آمد نان بخر یعنی آمدن مهمان علت اگر اینجور گفت اگر روز جمعه بود نان بخرد یعنی روز جمعه بودن علت تا بعد اگر وجه علت میشه چرا؟ چون در اعتباریات به واقع نظر نداره با جعل او واقعیت بیدان واقعیتش رو به اعتباره تفت می پس ما برای این ایلیت را هم به این نقطه مقام اعتبار اثبات می کنیم را هم به اعتبار قانونی اثبات می و لذا مثلا اگه پدر به پسرش گفت اگر مهمان آمد نان بخر شد محکوم برای سلام بخشت چون نمی که نان خرید علت وجود نان خریدن منحسره در آمدن نمی بوده. منحسر ممکنه یه روز دیگه بگه اگر روز جمعه بود نان بخرد یه روز دیگه بگه اگر فردا نانو یا ترتیب بودن امروز نان بخرد ممکنه بگه خب بگه سر اینکه که مفهوم منعقد نمیشه علیت هست انحصار نیست پس علیت منحسره با کجا می در قوانی چون طبیعت قانون این از که دائمی است. طبیعت خانون. مگر با یه خانون دیگه برش داره. رحمه می‌کنیم. اما در عرف عام اینطور نیست. امکنه فدر الان یه علت بگه فرضا علت دیگه بگه فرضا علت دیگه. و لذا اینی که آرخوی اینجا اشتای میکنن که مشعر به علیت هست. اما انحصاری نیست. تو محلوشت محلوشت هم نیست. راست علیت تکلیمی نیست. علیت اعتباری. انحصار هم از قانونی بودن در میاریم به ازا انحس... یعنی به عبارت اخراب علیت رو به خاطر یک قرنه عامه که اسمش مقام اعتباره انحصار رو باید توی به ازا موارد اعتبار بودن کافی نیست برای انحصار اعتبارات قانونی چون طبیعت اعتبارات قانونی این یک عمر ثابت و جاریست تا نرخ بشه،, بشه لذا از اون ما علت انحصاری بیفرند روشن که اینجا تا جاید که مشکل ندارد اما بحث محکوم بحث که آقایی بیفرنده مشکل اونجا چیه مشکل اونجا تحلیل حاله که بکنیم اکرم ار رجلل عالمه اینه مثل همونو دیگه اکرم یک وجود داره که مفادقیت یک متعلق داره که اکرم کرامت اکرام وجود اکرام این خورده درجه متعلق و متعلق که رجله و عالمن که صفت متعلق به این تحلیل ما برای کلام همین کلام اینه تحلیل کلام اینجا اینه یعنی اونی که باید اثبات بکنن وارد این طور بگی وجوب اکرام خورده به رجل خورده گفت بکنن وجوب اکرام خورده به رجل لکن نا مستقیم با یک خاصله گذاشته شده اون یعنی یک پنسز با علمه ها شده اون پنسز اینه که اگر وصف عالم باشه خوب دقیقه کن. اون را ایچه میگرد محکوم نداره میگن نه وجوب اکرام نه خرده براجور خرده براجوره و اگر به ای دو سه کلبه هست وجوب اکرام خرده براجور ایل واسطه نستی که اونجا وجوب اکرام خردود به زید زیارت واسده بود آمدن به خانه واسده بود یا نه وجوب اکرام اساسا خرده به رجل عالی. خوب دقت بکنی نه برده به رجل هم آرکویی میگن تقیید آمده و تقیید مرسید درست این حقا درسته اما اون رفتی محکوم نداره اون چی که میتونه محکوم این دارم انشاءالله واضح شد اون چی که میتونه محکوم درست بکنه باید این توصیف که ما اسمشی بذاشتیم هیئت ترکیبی ناقص این توصیف بیاد این کار رو بکنه الان که برای شما ویسانی میشه انشالا یا تبایی ها شد یعنی شما ببینید وقتی گفت اکرم ار رجلل یه موجوب اکرام دارد تا روشن این موجوب اکرام خیلی کسان ایچی که خواهیم بگن مفهوم داره تعلق گرفته به رجل دقیق کنیم لیکن نه تماماً در رجال با یک قید یعنی بسیار فاصله ایجاد میشه مستقیم نه گرده اون وقت به چه شرطی به چه قیبی به چه نقطی به نقطه عالمیت اما خرده در رجال دقیق کرده اون وقت این علت باشه به همون نقطهی شرانه عرض کردیم چون در مقام اعتبار قانونی انحسارم چون قوانین طبیعتشون انحساره این نمیشه اثباتی درده ایشون موتن ولو مشاره به الیت باشه اثبات این حساب نمیشه کرد. میشه نمیشه اثباتی ها. لکن بحثتر اینه که آیا این کلام در لغت عرب زیر بنای لغبیش یعنی این هیئت ترکیبی ناقص ار رجلال آلنگ این کار هیئت ترکیبی ناقص چیه محدود کردنه یا معلق ساختن؟ به ذهنی کردن معلق نمی کنه. معلق بر یک جهر نمی کنه. بله ما رجل گفتیم و عالم گفتیم ظاهرن هر دو با هم یعن رجل عالم این موضوع است برای وجوب اکرام ولذا مشکور هم قاعد شدن که محکوم وست ثابت نیست و ما برای اینکه که مطلب توضیح بیشتر بشه اینو با دیوزم یه مثال زدیم اینو با بیشترش میکنیم که کاملا واضح بشه ما اکثر این تغییر سه جوره سه جور ما تغییر داریم یکی یک تغییری که خود معنا فیزاته داره ممکن نهاز ممکن نمی‌خواد نکنه مثل میز میز خودش فی ذاته میز یه ایست که صندلی نیست میکروبون نیست ذات وصولی نیست ولی حساب خاص خودش داره فرق چیز مثلا عامه نیست میز یه چیز عامه چیز دیگه پس میز رو هم ما میتونیم تقیید برایش انتظار بکنیم شیب اون لحو سوره اگر گفت میز بخر، این معنیش این است که اینطوری گفته وجوب خریدن رفته رو شیب لیکن این لحو حاده سوره مثل یک حالت سلاصی کرده به شیب بگیم خیلی که با این شرط باشه معلق باشه بر عنوان حاده سوره این یه. خب در گفتیم که نه این تغییر ایجاد نمیکنه میز میز خر مفهوم نداره یعنی میز خر به اصطلاح بنده هست که این اصطلاح نداره یه قضیه سناریت نه سراسیه یه وجوب خریده هست میز چیز دیگه نیست تو بزن نه له و به سوره این یک مثال مثال دوم هست اکرمل عالم یا اکرمل آلم به عبارت اخران وصفی او برد که موسوف نداره وصفی او برد که موسوف نداره خب در مباحث مشتر ارز شد که در حیات افرادی در مثل مشتر ذات لحاظ شده ذات معنای مبهمش کاملا مبهم که ارز به چه خصوصی و لذا اگر یاد آقایون باشه همیشه ما ارز کرده فرق بین مشتر و فیل بین اسم فائل. مثلا قائم و قامه در مثل فعل نظر اتداعا بو حدث خیام. حدث رو هدفه گوه دخلت بکنین حدث قیام رو نسبت میره به ذات ما به نحوه حرکت سیالانی است سمن الوج، عدم ادم الالوجود این نقطه رو توش نگاه میکنه این فیل این... یعنی وقتی قامه قام یعنی که ما آخرنا نبوده بعد شده قامه بیرنم و وقت کردیم بناشون بگیریم که ای ای اگر این حرکت سیالا در زمان قبل از تکلم باشه بشونگن ماضی در زمان بعد از تکلم باشه مستقبل بشونگن و اگر در زمانی که با تکلم باشه زمان حال میگن پس بر خود دقت بپرمایید خیل معنش اینه اما مشتر معنش این نیست نه حدث منصوبن اه. نه ذات ما یونصد علیه حدثون حالا کیفیت نسبت هم به انهای مختلف ولذا در مشتق افتداعاً زاد تصور میشه قائم افتداعاً زاد تصور میشه در فعل افتداعاً حدث تصور میشه به این سا و ارز کردیم مراد از اشتغاق مراد از ترکیب مشتق هم همینه و درست دارم اینزا فرقه بحثایی به فلسفی و منطقی مطرح کرده. دارم اما اورث عربی و اورث فارسی و این اورخی که ما داریم اینها شامل برای این, بر این مسئله که درش ذات نگاه شده پس بنا بر این قائم از مثال میز یک مقدار باطل یک مقدار در چشش باطل مثال میز میزنه شیء لو حاضر سوره قائم ذات لو حاضر حدث حال فعل اسن دیره حال الفعل نحو من الاسماء ذات پس این یه مقدار قبیحتر شد مشع یک مقدار قبیحتر شد خب آیا این مفهوم داره یا نه اکرم عالما مفهوم داره یا نه یکی از مباحثی که در اینجا هست همینه چون در اینجا در آیه مبارکه اینجا اقم تاسون بنوئین این از قبیل این مثاله یعنی از جایی که بس معتمد لار موصوف نیست نگو اینجا اكو رجلن قاصوا اینجا اكو قاصوا لذا ما چون در الجیل بحث نکردینم چون این بحث نکردن ظاهره که چون قائل میشن یاد درست تو زین اینطور شده در این بود. شاید دوره بوده که ایشون نوشته. نوشتم لذا یه روشن شده بحث دیگه بحث دیگه اینه که اگر نص بدون اعتماد بر موسوف باشه حکم حکم محکوم لغبه البته انصافا واضح تر ازونه تو مفهوم لغن مثلا میز توش این شیء و لوازم سوره اما تو قائم هست ذات و در صفات الهی انصافا از اون واضح تره علایاله مرحوم ناینه قدس الله نعشه اینجا داره ایشون و فکر میکردم استادم عقیدش اینو زایا آیه بوجرادی استاد مرحوم ناینه گرفته بودن به نظرم استاد تو دوره بعدی یاد من تو فکر از ظاهرا اینطور تو ذهن من حال اینجا ایشون نفرنده ایشون برای اون کتاب بسوال و اصولیه دیگری که مفهوما اینجاست این است که اینجا وصف معتمد بر موسوف نیست. و اگر وصف معتمد بر موصوف نشود، یه مفهوم در نمیاد. میشه لقب، مفهومش حکم لقبه. لقب تو واضحه خود دارتش، میز به حد میز. دو اکرم عالمن، سه اکرم الرجال العالم. این مثال سوم. این به همه هم پس با ماوردی مل المجموع در دنیای اسلام بعضی‌ها قائلن هر ستا مفهوم داره بعضی‌ها قائلن اولی و دومی دو مفهوم ندارن مثل اون نوینی سوممی ممکنه اولی و دومی دو نداره سبومی و ظاهراً دوممی در عباراتش برایش مفهوم قائلن از ما یه درجه وسطی از مفهوم و روشن شد که نقطه فنی در تحلیل فنیش اینه که آیا اون حب رفته روی موصوف خوب دقیق بکنیم و اون صفت یک نوع واسطه است. یا نه حب اساسا رفته موصوف و صفت با هم و نقطه این که این ما از کجا استظهار بکنیم برمیداده به لغت عرب ما میگیم در لغت عرب حیات ترکیبی ناقص کارش اثبات تعلیق نیست کارش اثبات توسط نیست گوده بس می کنیم حیات ترکیبی ناقصه مثل اضافه مثل توصیف کارش تقییبه مثلا کتاب زید برو بازار کتاب زید رو بخر کتاب زید این کتاب زید محسوم نیست برو بازار بخر کتاب را ببینیم کتاب را معلقت در این مال است. اینجوری می میفهمیم چهتاب ض رو بخرد اینجوری میفهمیم نه اینکه ح خورده باشه دقت کردیم به چ در با مصوم می شود اینطوری میفهمیم چون وقتی یه اینجا ا که ض هو از اصلا جگار نگاه بکنید؟ اکثر هو ها که موضوع یا متعلق متعلقه ماده هم که وجوبه ماده هيت معزده ماده هم که اكرام این متعلق می گردد میشه وجوب اکرام تعلق گرفته به ذت لكن مصاد این این تعلیله یعنی میگه این وجوب اکرام مستقیم به ذت نکرده در این فرض در این تعلیه در این صورت در این صورت پیش این که میگه در این صورت این منشه مفعول منبع مفعول اینه این حالت رو توصیف می‌کنه خلاصه مطلب. در حیات ترکیبی ناقصه این کار نمیاد. در روشن شد در اگر می‌خواید این کار بذارد، اینطور بشه. وجود اخوان، خورده اکرام اجور، اون دکتر فکر می‌کنه خورده به رجل یا مثلا وجود شرایط، خورده به کتاب، لکن توسط داره، وسعت داره. کتاب دلیلی این اینکه مال زیب باشه. اما اگر بگیم محکوم نذاره نه رو به خریدن خود به خود کتاب بذاریم کتاب بذاریم اضافه کارش اینه اضافه توسط درست نمی کنه تعلیق درست نمی کنه اضافه و توصیف تغییر درست نمی کنه. یعنی بعد از این که مضاف و مضاف و رو با هم به هات کردیم اون حج به اون تعلق گرفته نه اول حجم به مضاف تعلق بگیره دقت بکنیم بعد یه مزافون الیه رو در نظر بگیریم به با عنوان واسه یه بین موضوع و خب این نیست مزافون الیه با هم چند میشه یه حکمش تا اللہ میگیره میشه کتاب زد وجود خریدم. پس بر این روشن شد که کسانی که در دنیا و اصول میگن برای محکوم سه تا احتمال ما الان زد کردیم سه تا مثال میز بخر اکرم آلم من اکرم ار رجل از آلم کمی در همه قائل رو مفهوم شده ادهی باز از او کم بیشتر در دوتا تا رو مفهوم شده اولی نه اولی یه سویت مفهوم لگه دومی و سومی رو مفهوم وست ادهی هم در سومی فقط قائل رو مفهوم شده دومی رو هم مثل اولی گرفت اکثر ما عالی نه، نروم نه اینی. نروم نه اینی که بعض فهمت معتقد بر موسوم نبود، حکم لقب داره فرق میکنه گونه جالبی دوشه. مزه اکثرم زیاده. اکثرم عالی با اکثرم زیاد یکیه. البته دقت بکنید، اون زید خصوصیتش رو با تحلیل بکنید. مثلا انسانان موجودان لهو حال آنها، انسانان لهو حال شوره. اما اکنون عاالما دیگه اینقدر دقت نمی خود او میفهمد ذاتالب سفر. بعضی آن گفتن نه در این دوسور از ممننای مکوم ثابت نمیشه اگر بر از ثابت شده در اونجا میشه که سفر جدا دانش این چند سالهش رو سه و که مشهورتر بین تمام اصولی هیچ کدومش مفهوم نداره و نه اولی و نه دوگومی و نه هیچ کدوم از اینها مفهوم نداره. چه نکته اساسی اینه که این حیات, تق... این... این حیات توصیفه از اضافه هم همینطوره حیات ترکیبی ناقص در زبان عربی این کار رو نمیکنه که یک نوع ترسط درست بکنه یا تعلیق درست بکنه کار رو که میکنه کنه و تقیید اگر ست تا قیدم به یک موضوع بخوره درخوره موضوع یک دیگه با قیود متعدد عوض نمیشه شه هم تیزه خب این خلاصه ای این بحث پس این که مرموم استاد را مفهوم شدن در این مثال در لغف را مفهوم ما به نظر را هیچ فرم هر سه مثال از واضی واحده حالا ما برای این که آقایان یواشواش با نکات فنی کار آشنا بشن که اصولا نکتی استدلال تجاست حالا همین مفهوم و ایناست که ما الان بحث کردیم من چون خیلی مغیدم که همیشه عبارت خونده بشه و یاد بیان آیه که کجا. ببین در این بحثی که دیروز ما ازدواج خوی خوندیم یکیش این بود به اعتبار آن نبوت او جواب تبعیض ان خبر فاسد ببین بعد فرمودن آن تبعیض لیس واجب نفسیه. بله این اول بحثیشان. بله. لذا در آخر دارم و علیه فیقون و مفهوم و فل آیه شریفه ان وجوب و لیسه ثابتن لطبیعت الخبر ببینید بحث اساسی راجع به این آیه مبارکه بحث محسوسی دیلوزه امون زخش شما را گرفتیم بحث مفهوم المثل بحث اساسی راجع به آیه دو نکتی دو نکتی اساسی که این به درد بقیه وجود هم میخواید الان دوتش اینجا بود نقطه اول اینه در ذهنیت آقایان همین چون که ایشون تصدیق آمده است که وجوب تولیون یک وجود شرعیه اینجا از اون پاسه همون به خب حالا بگیم چون در لوقات عرب من چند دفعه از کلام خیلی از مفاهیمی که جنبه وز ایداره به سیغه اقعال گفته میشه. مثل مثلا همین حدیثی که تازی که خودم از شیخ توسی که اگر ادار ندرد بکنم حادث از اون لا تجدون و حکم ها فیمار و بیعنا یا فیمار و بیعنا فنز رو ادامار و با انعالیه فعملو به این فعملو به بلا به سیغه افعاله درکه مراد حجییت یعنی حجده این خبر حجه. این وجوب یک وجوب شرعی خوب دقیق کنه آیا این وجوب در اینجا یک وجوب شرعی مفحول ان گرفته هم سنی هم شیعه پس چرا مفحول دلیلشون, دلیلشون این شیه این شیه نقش چون فاسق راسه فاسق. فاسق هم اصطلاح شرعیه عادل و فاسق اصطلاح شرعیه چون اصطلاح شرعیه پس نباد کلام را هم بکنیم بر مفهوم اوغلای خودش کلام قواعد هم بگیم بر مفهوم شرعی. پس نکته اصلی اصلی این بس این است که این وجوب تبیین شرعی است یا این وجوب تبیین یه یعنی امر عرفی یا عقلی است اصلا که پای نداره. و آیه مبارکه یک نکته عقلانی رو برم‌کردن. این یک نکته. نکته دوم که ایشون خوندیم هم در اول مثلا ایشون میگن ظاهرش این است که تبیان از خبر فاسق به خاطر اینکه که فاسق است اما انحصار در نمیاد نکته دوم و اساسی در این آیه مبارکه مسبب، و مساب و سیاه و آیه چیه این آقایه خوبی ترجمه که انایز نفرمدن مثب به آیه آیا ناظر به خبر فاسقه اصولاً ناظر به خبره و این خبر اگر طرف فاسق باشه تعیین مخاط وجوب شرعی دارد لله تعالی آیا مذهب به آیه اینه یا مذهب به آیه ای که از احکام فاسقه رافی به خبر نداره مثلا خاص در شریعه رو پس سر فاسقه نماز نکنیم در خود قرآن میاد اش مذوبه اهل منکم فاسق طلاق ندین یکی از احکام فاسق اینه که فاسق ولو ظاهر یعنی ولو صغه در عمل باشه لاکن شما در فاسق در خبرش تعمل بکنید این اون خبر رو فخص و بحث ازش بکنید شواهدش رو پیدا بکنید مثلا آدم که دروغ نمیگه ولیکن شراب میخوره چون فاسقه در یه خبری که پیش آمد باز هم تعمل بکنید چون ممکنه لخواهی کسی که رعایت احترام الاغی و حرمت الاغی رو نکنه ممکنه دروغ هم نگید ولی می... چون نباید مراده از فاسق در آیه مبارکه. کسی باشه که دروغو باشی اونه ارفیه که قبول نمیتون خبر باشه دروغو بکر باشه ظاهرش این است که لاعقل انسان مکهول الحال یا مسلمان عادی است لیکن فسقش رو میدونیم فسقش رو, رو, رو میدونیم خبر جدا ظاهر آیه مبارکه این است که چون فاصله و لذا به خاطر این فسقش احتمال داره که بازم توی این خبر دروغ گفته باشه بلکه حتی اگه هم باشه بازار احتمال داره دروغ گفته باشه لذا باید خبرش رو تبیین کنیم و درست نگه نگاه بدیم خاصه دقت بکنید دو نکته اساسی در اینجا هست یک اینکه این وجوب تبیین یک وجوب شرعی است که آیان گرفته. دو اینکه آیه مذهب بهش رو خبره لذا خبر فاسق رو گفته قبول نکنه تبیین وقت نتیجه میشه خبر آذر قبول بشه. نا خب انصافا ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه ظاهر آیه مبارکه ناظر به خبر نیست ناظر به حال فاسقه اینجا اکن فاسقون به یک انسان فاسقه اگه مطلبی گفت فقط یعنی. این ظاهرش ناظر به این نیست که احوالات نبع رو بگه که نبع دو جوره. نبعی که فاسق میاره نبعی که ظاهرش ظاهرشی که از احوالات فاسقه یکی از خصائص فاسق اینه که در خبر او باید بشه باید بررسی بشه این وقتی به جهازه تقسیم خبر نیست یکی از لوازم و آثار فیصل اینه لذا حتی اگر متحرزه از کذبه دروغ نمیگه میشنسیم دروغ نمیگه لپین چون فاسقه رد نکنیم خبرش رو، اما درست نگرد بذاریم اگر این جور معنا بکنیم این بحثی به بحث که اینا میخوان بیانم آقای مفهوم وقت ثابت باشه یا نباشه و اما اینکه وجوب تبیین وجوب شرعی اینا نقطه فنیشون اینه اصل نقطه فنی این است که چون فاصل مفهوم شرعیه پس این تبیین هم باید یک وجوب شرعی باشه و که من چاره از شواهد قرآنی حاکی از این نیست شواهد قرآنی حاکی از این است که مفهوم فسط داره یک محفوم عرفی بوده مفهوم عرفی اجتماعی بوده و سر قصه اینه من از که شواهد قطعی قرآن هاکی است که حتی مشکلی به الله ایمان داشتن شکالشون سر از این گوتهای اینا شدیه و ولذا این تصور که الله هست و اطاعت خدا هست و محسوسا که اینا میگوستن از رایم اینجا بود و این فسق اینطور نبوده که ای اصطلاح شرقی باشه این روشن اصلا اصلاح خود این اصطلاح روشن نیست که اصطلاح شرقی باشه در اصطلاح اون زمان مثلا اینطوری می شده فاسق کسی که در مقابل الله که خود مشرکین هم با اون بودن در مقابل الله او اسیان بکنه و زواهر آیات و مبارکم هم همینطور اینه انسان وقت آیات رو نگاه میکنه و لا تکرون مالمی به فرسم الله علیه و اون فسقن احضه بیده غیر الله این کرمه الله به کار برده شده مراد از الله یعنی شما اگر این حیوان رو در مقابل غیر الله در مقابل بطاب سر ببریم بازم فسقه بانامونها سر ببریم بازم فسقه باید در مقابل الله باشید اصلا شواهد در باران زیاده قطعیست که اصل ایمان به الله در اونها موجود بوده ای تو نبودی که ایمان ایمانو به الله نداشته باشن لذا این بحث حتی در یک شعر معروف عربی تعبیر میکنه از خمر به عنوان اسم گناه شرب طول ازم حتی غل عقی گناه رو کردن تو عقل از دت رد اصلا تعبیر به ازم ازش میکنه ازم یعنی گناه این پس مسئله خز یک چیزی نبوده یعنی فسر در حقیقت یک نوع خروج انسان از اون قانون الاری و طبیعت بوده فاصل اگر همین نبوده که مثلا پس شخصی که لاعبالی باشه پس که مثلا در جامعه به های مردم و اموال مردم این رو رو بسن حتی شاد باشیم در روایات سنی و شیعه تربیه شده از موش به فو وی سره فاسره در وی سره فو وی موشیم از را می که چرا روشن نگذاری؟ اینه تجر و نا و تهره با داره علا یا بیت علا این فویسمه یعنی این است که تحت کنترل نمیاد یعنی تحت حیوان دستاقوست تو خونه نمیشه یعنی بودفن نیز اون رو اصطلاح حیوانات اهلی به زبان فارسی میگیم و در لغت عرب یک چیز دیگه میگن بعد از الفت از الفت یک اشتغال می از نه غیر از او چیزی دیدن یه اصطلاح دیگر نویدن بس. بس و هر حال این که تعبیر شد به خوبه ای سقه یعنی حیوانیست که تحت کنترل نمیاد و از کنترول خود به ذهن ما این طور میاد اینجا اکن خواست خون به اصطلاح شرعی نیست اگر آقایون اول بحث خبر واحدن هم بوش کرده بسید یه دو ماهی شده من ارزا کردم که این بحث نکته، بحث این است که آیا آیه مبارکه یک تعبط شرعی جدید داره یا آیه مبارکه اش اش ارسال به همین ارتفاط و اقلالیه اصلا این دیلگاه اساسی اینه کاری به مفهوم برس شرط شرق نکنید اون ویلگاه اساسی این است که آیا آیه یک تعبود جدید داره اینا ما میگن بگن تعبود جدید داره و این تعبودش این طوره راجع به خبر فاسق وجوب تبعیم راجع به خبر عادل قبول این تعبود ما و لذا ما همیشه عرض میکردیم که حجیت تعبودی خبر همیشه عرض میکردیم اینا از آیه مبارکه تعبود رو در بردم به نظر ما آیه تعبوده تعبود نباشه من <تصفيق> چون بودن تو همون جامعه جایی اطلاع کارهای زشت میکردن هم جاره. هم جاره جامعه جاره. نه ببینید خدا میخواد بگه شما نگید این دروغ نمیگه آدم لاعبالی هست مردم ازیت میکنه بزمسی میکنه اما دروغ نمیگه باشه خدا میخواد بگه هر انسانی که از دایره عقل پا گذاشت ممکنه دروغ نگه اما چون از پای دایره فطرت و عقل و خدا پا رو بیرون گذاشت ممکنه تو خبرشون پس این در حقیقت یک ارشاد به یک امر عقلانی است نه یک ار تعبد شرعی جدیری باشه این ارشاد است یک امر تعقلی است ببینید اصلا که در قیل و مرغان نبود در شعر یعنی ادعا کردن اینکه کاری اصلا بحث اون مراجعه بکنید دست قران اینها نیست بحث اینه که این به قیاس به الله ده اینا ایمان به الله داشته خب ایمان به الله پیدا کردن باز فسخ اطاعت تصور میکنن به از اون معنی نداره که نمیشه غیر از تصور لذا به ذهن ما الان الفرضه ارشاد حوزی رو عرض میکنیم اصل آیه عبادت نیست اصل استدلال اینه این روش فکر بکنید آیا آیه تعبد منطوقا و مفهوما یا آیه تعبد نیست بلزا علامه در این در کتاب معالم آموزه که پسر الله به پدرش میگه شما چرا میین حواندن این خبر عوان, عوان سرقت و جر و قتل اشتباه چرا خبر عوان رو گفت وان که عوان توصیف شده سرقت و و علامه جواب میده که لقول تاها اینجا از اون فاسقون به نبراین و چون ایشون مثلا واقفیست یا فضاییست یا مثلا هر دو رو بشنست یا ایشگوری میشن یا مثلا نابوسیست چون ایشون جزو مذایب فاسقون و ایفرس خانه هر زن بنهاز دقیق بکنیم یعنی اینا تعبد گرفتن کلام داری هست که آیا آیه مبارکه تعبده یای این مورد که تعبد میزیم رو اغلایی سرشا به هم اصلا شاره تو مسئله خبر تعبد خاصی نداره کلا سوال سوال از اینه اصلا شاره تو مسئله خبر هیچ تعبد خاصی رو وارد نشده همون سیر اغلایی متعارف رو انجاره.